یه پاتونو بلند کنین تیمسا سختیش تا وقتی است که سر زبانها بیفتد دیوانه شده ای بعد از آن دیگر تا آخر عمر راحتی و به مشکلی بر نمیخولی. برای همین کسانی هستند که سالها سعی می دیوانگیشان سر زبانها بی اما موفق نمی‌شوند. اما یوسف همین که از دانشکده افسری با درجه ی دومی دو فرق و تحصیل شد توانست لقب دیوونه را به اسمش اضافه کند و به یوسف دیوونه دیوانگی اگر تا آن اندازه نباشد که آدم را بردارند و ببرند توی تیمارستان حبس کنند بهترین نوع مسئولیت است اگر آدمی عادی کاری خراف بکند به درد سر اما اگر دیوانه دیوانگیی بکند میگویند دیوونه دیوانه است دیگه عیبی نداره و به حال خودش رهایش می کند. یوسف دیوونه از آنها بود که توانستند حد وسط را پیدا کنند. نمیدانم چطور است که همه ای ما آدمها به دیوانه ها علاقه داریم. یوسف دیوونه هم از محبوب ترین افسرها بود. چشم دل سیر. این مزیتش باعث شد سریع ترفیع درجه بگیرد و در مدت کوتاهی تیم سار شود. حسن افندی افسر تدارکات در یگان تیم یوسف دیوونه خدمت می کرد. حسن افندی را چهار بار درجه کرده بود. او هم دوباره چهار بار ترفیع درجه گرفته بود. تنها آرزویش این بود که با درجه سرگردی بازنشسته شود. اگر در اسنای جنگ یک دفعه درجه سرهنگی می گرفت که نور علا نور بود. تیم سار یوسف دیوونه خاطر حسن افندی افسر تدارکات را خیلی میخواست. خواست. حسن افندی مدرسه نظام را تمام نکرده بود. به دلیل تجربهش به این مقام رسیده بود. با آنکه معلوماتش کم بود، در عوض آدم کاری و درست و با عرضه بود. زمان جنگ هم به این چیزها بیش از هر چیز دیگری احتیاج است. از آنجا که امیدوار بود به درجه سرهنگی برسد و بازنشسته شود، با جان و دل کار می کرد. اما همیشه ترسی در وجودش بود. ترس از اینکه دوباره خلع درجه شود. چهار بار خلع درجه شده بود و می دانست خلع درجه شدن چه مزهی دارد. چهار بار سروان شدن و دوباره با سعی و جان کندن ترفیع درجه گرفتن و سرگرد شدن. با خودش می گفت، اگه سرهنگ هم نشم عیوی نداره، راضیم با درجه سرگردی بازنشسته بشم، فقط کاش این درجه رو دوباره ازم نگیرن. آن زمان ها های ارتش تلفن مغناطیسی زامندار بود. موقع حرف زدن با تلفن باید زامنش رو فشار میدادی وگرنه صدا نمی هر وقت کسی با تلفن داخل قرارگاه حرف میزد حسن افندی افسر تدارکات از حیرت انگوش به دهان می ماند به افسرهای قرارگاه میگفت: من که از این کار سر در نیاوردم نمیدونم چه جوریه که نمیتونم با تلفن صحبت بکنم حسن افندی خبر نداشت که تلفن زامن دارد و باید موقع صحبت زامن آن را فشار داد روزی در قرارگاه حسن افندی همین که دید یکی از افسرها دارد با تلفن صحبت میکند گفت بده ببینم اینو. گوشی را از دست افسر قرارگاه گرفت و شروع کرد به فریاد زدن. الو؟ الو؟ صدا نمی یکی از افسرها گفت: خب معلومه که نمیتونی صحبت کنی حسن افندی. تو موقعی حرف زدن با تلفن جفت پاهاتو روی زمین میذاری و اینطوری همه جریان برق میره تو زمین. حسن افندی پرسید: بس باید چیکار کنم؟ باید یکی از پاهاتو بلند کنی و روی یه پا وایستی." یعنی واسه همینه که نمیتونم صحبت کنم؟ خب آره دیگه نگاه کن اینجوری افسر جوان یکی از پاهایش را بلند کرد. گوشی تلفن را به دست گرفت و یواشکی زامنش را فشار داد و گرفت جلو گوش حسن افندی و گفت: یه پاتو بلند کن و صحبت کن. حسن افندی یکی از پاهایش را بلند کرد و با تلفنی که دست افسر جوان بود شروع کرد به حرف زدن. درست همان موقع یکی از ترواش‌های ستاد وارد شد. و به حسن افندی گفت، تیمسار با شما کار داره قربان؟ حسن افندی رفت پیش تیمسار یوسف دیوونه و هنوز پنج دقیقه نشده با صورتی برافروخته برگشت. سرش را میان دستهایش گرفت و گفت، درجهها بازم پرید. حسن افندی افسر تدارکات برای پنجمین بار خلع درجه شده بود. باز هم شده بود سروان. وقتی حسن افندی به اتاق تیمسار یوسوفیون داخل شد، تیمسار داشت با تلفن حرف میزد. در اتاق علاوه بر تیمسار، آجودان او و رئیس ستاد ارتش هم بودند. از آنجا که خطهای تلفن را خوب وصل نکرده بودند، تیمسار هر کاری می کرد، نمی توانست با تلفن صحبت کند. عصبانی شده بود. درست همان موقع حسن افندی که گمان میکرد بهترین فرصت برای گرفتن درجه سرهنگی به چنگش افتاده گفت: «یه پاتونو بلند کنین تیمسار.» تیمسار یوسف دیوونه با افسرهای زیر دستش مستقیم و رو در رو حرف نمیزد آجودانش را واسطه قرار میدند برای همین از آجودانش پرسید چی میگه؟ آجودان هم از افسر تدارکات پرسید چی میگید حسن افندی؟ حسن افندی گفت جناب تیمسار اگه میخوان با تلفن صحبت کنن باید یه پاشونو بلند کنن آجودان به تیمسار گفت میگه یه پاتونو بلند کنین قربان. از اتاق تیمساری یوسف دیوونه صدای مثل آسمان قرن به بلند شد. بعد حسن افندی بیرون ده به قرارگاه برگشت. بعد از آنکه کلی لیچار بار تلفن کرد گفت درجههامون رفت. باس از سر شروع کنی.